دوستای خوبم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. این دوریه بررسی عجیبترین کتاب در تمام دنیا کتاب مقدس کلام خدا هست. ما بررسی عهد قدیم رو تموم کردیم و شروع به بررسی عهد جدید کردیم. اولین کتاب عهد جدید عبارتند از متا، مرقس، لوقا و یوحنا. به این چهار کتاب آنو انجیل گفته میشه چون اونها بشارت خوش عیسی مسیح رو به ما میدن کل کتاب مقدس در واقع مربوط به عیسی مسیح هست. پس وقتی به این چهار انجیل می رسیم به قلب کتاب مقدس وارد میشیم. شیم دا می کنم که شما قلب هاتون رو آماده کنین تا رو که خدا میخواد به ما یاد بده از درس امروز بشنوین این شما و این معلم ما در ابتدای بررسی عهد جدید میخوام مقدمه و دیدگاهی از انجیل های متا، مرغوس، لغا و یوحنا به شما بدم. مایلم به چیزهایی اشاره کنم که وقتی این چهار کتاب رو میخونید به شما کمک کنه. اولاً به این توجه کنید که تمامی انجیل از عیسی مسیح با ما صحبت میکنه. اما به نظر میرسه هر کدام از نویسندگان به بخشهای خاصی از زندگی عیسی مسیح علاقه بیشتری نشون دادند. و به بخشهای دیگری از زندگی او زیاد توجه نکردند. اگر شما به زندگی مرد بزرگی علاقمند باشید مطمئنم که میخوایید بیوگرافی های بیشتری از اون مرد رو مطالعه کنید آیا به نظر شما عجیب به نظر نمیاد که یک نویسنده سرگذشت هرگز به تولد و سی سال اول زندگی کسی توجه نکنه حتی اگر موضوع سرگذشت شما در سه سال آخر به کمال و اوج خودش برسه شما حتماً تعجب خواهید کرد که چرا به تولد و سی سال اول زندگی او اشاره ای نشده؟ در انجیل مرقس و یوحنا به تولد عیسی و به سی سال اول زندگی او حتی اشاره هم نشده. با این حال به اونها زندگی نامی ایسا میگیم. وقتی انجیل متا رو میخونید با حقایقی در مورد تولد او مواجه میشید که به طور خلاصه تقریباً یک باب و نیم رو به خودش اختصاص داده. وقتی انجیل لوقا رو میخونید میبینید که دو باب به تولد و برخی از وقایع کودکی که در سی سال اول زندگی او اتفاق افتاده اختصاص یافته. اگر بابهای انجیل های مرقس، لوقا و یوحنا رو با هم جمع کنید میبینید که این چهار انجیل از 89 باب تشکیل شده. از این 89 باب در چهار انجیل فقط چهار باب به تولد و سیسال سال اول زندگی عیسی اختصاص یافته. و 85 و باب دیگر به سه سال آخر زندگی عیسی اختصاص یافته است. از ابتدای باب سیزده تا آخر کتاب یعنی تقریبا نصف کتاب می‌بینید که به یک هفته آخر زندگی عیسی اختصاص یافته. پس وقتی که یوحنا زندگی عیسی رو برای ما گزارش می‌کنه، نصف کتابش رو اختصاص به سه سال آخر زندگی او داده و هیچ اشاره‌ای به تولد و سی سال اول زندگی او نکرده. و نصف دیگر کتابش رو به یک هفته آخر زندگی عیسی اختصاص داده. وقتی به انجیل ها می رسید، ملاحظه کنید که این نویسندگان بر چه چیزی تاکید کردند. ملاحظه کنید که به اعتقاد اونها چه چیزی در زندگی عیسی بیشترین اهمیت رو داشته. ما بیشتر به کریسمس اهمیت میدیم. نویسندگان انجیل ها به عید قیام بیشتر اهمیت دادند. اونها در مورد کریسمس بسیار کم صحبت کردند. اونها چیز زیادی در مورد تولد او نمیگند اما چیزهای زیادی دارند که درباره آخرین هفته زندگی او و مرگ او بر صلیب و قیامش به ما بگن اینکه که انجیل ها اشاره کمی به تولد عیسی و سی سال اول زندگی او کرده اند و بیشتر به آخرین هفته زندگی او پرداخته اند به ما کمک میکنه که دیدگاهی از ماهیت واقعی این انجیل ها به دست بیاریم به اعتقاد بعضی ها انجیل ها زندگینامه عیسی هستند چون اطلاعات مربوط به زندگی عیسی که در دسترس ما هست توسط این چهار کتاب به دست ما رسیده. اما همونطور که اشاره کردم اونها زندگی نامه های معمولی نیستند. زندگی نامه های معمولی مطلقاً تولد و سی سال اول زندگی کسی رو که فقط سی و سه سال زندگی کرده نادیده نمیگیرند. اونها به لحاظ فنی زندگی نامه نیستند. اونها خبر خوش هستند. چرا به اونها خبر خوش گفته میشه به اونها خبر خوش گفته میشه چون مجده آمدن مسیح رو به ما مرقس اون رو اینطور بیان میکنه مرقس به تولد او و یا سی سال اول زندگیش اشاره نمیکنه او فقط میگه عیسی آمد به این فکر کنید ما تاریخ بشری رو به دو بخش تقسیم میکنیم قبل از اینکه عیسی بیاد و بعد از اینکه عیسی آمد قبل از اینکه عیسی زندگی میکرد و بعد از اینکه که ایسا زندگی می کرد آیا میتونید تصور کنید به جایی در زندگی برسید که دنیا تصمیم بگیره وقتی شما بعد از سی و 33 سال زندگی مردید تاریخش رو بر مبنای قبل و بعد از زندگی شما تقسیم کنه؟ این تأثیر بر تاریخ هست این واقعیت که عیسی آمد برای دنیا بسیار بسیار مهم بود یوحنا در باب اول انجیلش در حالی که تولد و سی سال اول زندگی عیسی رو ندیده گرفته او رو در حالی که سی سال هست به ما معرفی میکنه. اون را رو اینطور به ما معرفی میکنه. اینک بره خدا که آمد تا گناه از جهان برگیرد. وقتی این انجیل ها رو می میکنید خواهید فهمید که اونها فقط زندگی نامه های یک مرد بزرگ نیستند که بیش از دو هزار سال پیش به مدت سی سال زندگی کرد. اونها خبرهای خوش هستند اونها به ما این مژده رو می که ایسا آمد و وقتی عیسی آمد او بره خدا بود که آمد تا گناه را از دنیا برداره. آمده مشکل گناه ما رو حل کنه. اهمیت واقعیت آمدن مسیح به اعتقاد نویسندگان اناجیل در این بود که او بره خدا بود و برای برداشتن گناه به این جهان آمد. وقتی که بررسی عهد جدید را با اناجیل شروع کنیم سعی خواهم کرد بر جاهایی که نویسندگان اناجیل بر آن تکیه کردن تاکید کنم. ملاحظه کنید که نقطه عطف زندگی مسیح در اناجیل کجا هست. منظورم از نقطه عطف در زندگی مسیح تولد او، تعمید او، وسوسه‌های او، تبدیل حیعت او و مخصوصاً مرگ و قیام و صعود او هست. اگر این نقاط عطف رو در زندگی مسیح ملاحظه کنید، به احتمال زیاد مهمترین اونها، مرگ و قیام او بود. همونطور که در انجیل یوحنا گفتم نیمی از انجیل مرگ و قیام او رو شهر میده. آخرین هفته زندگی عیسی برای نویسنده انجیل از اهمیت زیادی برخوردار هست. چون که این هفته ای بود که او بره خدا شد و مشکل گناه دنیا رو با مردن بر روی صلیب به خاطر گناهان این دنیا حل کرد. وقتی که از نزدیک به اناجیل نگاه میکنیم خواهیم فهمید که عیسی. مردی بود که معموریت داشت. عیسی مردی بود که میدونست معموریتش چیه. وقتی انجیل رو میخونید و گوش میکنید که عیسی میگه چرا اومد؟ هدفش چی بود؟ مأموریتش چی بود؟ خواهید فهمید که هیچ شکی نبود که او میدونست چه مأموریتی داره. برای مثال اگر انجیل یوحنا رو بخونید، خواهید فهمید که عیسی مردی بود که افکار باشکوهی داشت. او اون رو در باب 9 آیه چهار اینطور بیان میکنه تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانیم وقتی شب می آید کسی نمیتواند کار کند در باب چهار انجیل یوحنا آیه 34 عیسی میگه خوراک من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کار او را به کمال برسانم او این رو زمانی گفت که از گفتگوی با زن سامری بر سر چاه فارق شده بود این زن تولد تازه رو تجربه کرد. عیسی رسولان و فرستاده بود تا از روستا غذا بگیرن. وقتی اونها برگشتند عیسی غذا نخورد. مشخص بود که او میخواسته در اون گفتگو تنها باشه. وقتی او از خوردن غذایی که شاگردان برای او آوردند امتنا کرد، او گفت: من غذایی برای خوردن دارم که شما از آن بیخبرید. بعد عیسی اینطور طور گفت: خوراک من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم. و کار او را به کمال برسانم در باب پنجم یوحنا وقتی او درگیر بحث با رهبران مذهبی بود به اونها گفت کارهایی که من انجام میدم نشون میده من همونی هستم که ادعا میکنم هستم بعد وقتی او به پایان سه سال خدمتش رسید وقتی به باغ جتسیمانی رفت و وقتی دعا میکرد و عرق او مانند قطرات خون از پیشانیش میچکید او سخنان حیرت انگیزی گفت در یوحنا باب 17 آیه چهار عیسی می گفت من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم عیسی نمونه زندگی برای ما بود او به ما نشون داد که چطور باید زندگی کرد عیسی هدف از وجود انسان رو به ما نشون داد آیین الهی میگه هدف نهایی از وجود انسان اینه که خدا جلال پیدا کنه و خود انسان تا ابد از او لذت ببره ما باید خدا رو جلال بدیم معنی جلال دادن چیه و چطور این کار رو می کنید؟ ایسا در پایان زندگی کاملش گفت من تو را این گونه بر روی زمین جلال دادم کاری را که به من سپردی به کمال رساندم وقتی عیسی بر روی صلیب مرد آخرین کلامش این بود تمام شد بعد او گفت پدر روهم رو به دستان تو تسلیم می کنم سالها پیش خادمی در اکوادور به همراه چهار نفر از دوستانش شهید شد اسم او جیم الیوت بود او تحصیل کرده بود اما مردم به او گفته بودند که نباید خدمت کنه چون خیلی باهوش و تحصیل کرده است او نابغ ای جوان بود هندی های اکوادور به او و چهار دوستش حمله کردند بدن اونها با ساتورها تکه تکه شد ارتشیها برای جمع کردن جسد اونها رفتند. قطعات بدن اونها در رودخانه های جنگل انداخته شده بود وقتی بدن جیم الیوت رو پیدا کردند ماهیان گوشت خار اکثر بدن او رو خورده بودند و فقط اسکلتی از او باقی مانده بود. اونها دفتر خاطرات جیم الیوت رو پیدا کردند در دفتری که در آب گلالود کثیف شده بود این کلمات به چشم می‌خورد. وقتی زمان خدا در نقشه و هدفش برای شما به پایان برسه و شما باید بمیرید باید بدونید که تنها کاری که باید بکنید اینه که بمیرید. آیا میدونید منظور جیم الیوت از این چی بود؟ ببینید عیسی به صورت کاملی زندگی کرد. در تمامی طول عمرش عیسی خود رو وقت به کارهایی کرد که پدر از او خواسته بود به انجام برسونه. او هر روزه میگفت من باید کار فرستنده خود رو انجام برسونم. چون وقتی شب فرا برسه دیگه نمیتونید کار کنید. وقتی عیسی به پایان زندگی خودش رسید گفت من تو را جلال دادم چون هر کاری که به من سپرده بودی به پایان رساندم. یکی از نقاط عطف زندگی مسیح تبدیل حیعت او بود. وقتی حیعت ایسا تبدیل یافت ما میخونیم که او با ایلیا و موسا ملاقات کرد. این محل تلاقی عهد قدیم با عهد جدید بود. در موقع تبدیل بر سر کوه تصور کنید موسا ظاهر میشه ایلیا ظاهر میشه و ایسا اونجا حضور داره. حیعت ایسا تبدیل یافت. پتروس به همراه یعقوب و یوحنا وقتی اون موسا و ایلیا و سیمای تبدیل یافته ایسا رو میبینه که در بدن جلال یافته ظاهر شده، نمیدونه که چی بگه. ما میخونیم که چون او نمیدونست چی باید بگه، به هر حال چیزی گفت. این عادت پدرس بود. او گفت خداوندا چه خوب شد که ما همینجا هستیم. بذارید سه سایبان برای شما بسازیم. یکی برای شما، یکی برای موسا و یکی برای ایلیا. او این رو گفت چون نمیدونست چی باید بگه عجب تجربه‌ای بر بالای کوه در هنگام تبدیل هیئت ایسا داشتند. پتروس در نامه دومش به ما میگه که او بالای کوه به همراه ایسا بوده و هرگز اون تجربه رو فراموش نمیکنه. حالا وقتی عیسی با موسا و ایلیا ملاقات کرد، اونها میدونستند چی باید بگن. اونها به هم دیگه چی گفتن؟ آیا تاکنون این رو خوندید؟ وقتی انجیل رو میخونید، این رو حتما ملاحظه کنید. وقتی موسی و ایلیا با عیسی صحبت کردند، آنها درباره مرگ او صحبت کردند که قرار بود در اورشلیم به انجام برسه. آیا به مرگ خودتون به عنوان یک کمال نگاه می کنید؟ فرض کنید که به دکتر رفتید و او از تمام بدن شما اکس های رادیوگرافی گرفته و گفته خبری براتون دارم. شما تا شش ماه بعد به کمال بزرگی دست خواهید یافت و در طی شش ماه آینده مرگ رو به انجام خواهید رساند. آیا فکر می کنید که این یک فضیلت و کمال بزرگه؟ وقتی ایسا به پایان زندگی زمینیش رسید، چون او در نظر خدا زندگی کاملی کرد، میتونست بگه پدر، من تو رو بر روی زمین جلال دادم. تمام کاری که به من سپرده بودی انجام دادم. میخوام شما رو با این سوالات به چالش بکشم. آیا میدونید خدا شما رو برای انجام چه کارهایی خلق کرده؟ آیا میدونید برای چه شما رو نجات داده تا با انجامش رو جلال بدید؟ آیا هر روزه اون کارها رو به انجام میرسونید؟ وقتی در نقشه خداوند زمان مرگ شما فرا برسه آیا میتونید بگید پدر من تو رو بر روی زمین جلال دادم کاری که به من سپرده بودی به انجام رساندم میتونید بگید تمام شد پدر روحم رو به دستان تو میسپارم؟ عیسی مسیح مردی بود که ماموریتی داشت عیسی مسیح میدونست معموریتش چیه و ماموریتش رو در این دنیا تماما پذیرفت او ماموریت خودش رو به عنوان کاری که پدر انجامش رو از او خواسته بود توصیف میکنه سالها پیش من نزدیک بود که بمیرم یک افسر نیروی دریایی از من خواسته بود که در مدتی که او در سفر دریایی بود ماشینش رو نگه دارم این ماشین کوچک اسپورت موتور قدرتمندی داشت در یک شاهراه بزرگ رانندگی می کردم و مشغول صحبت بودم که یک دوج کوروت مالند باد از کنارم گذشت و من به لاین مخالف کشیده شدم و با یک تریلی قول پیکر تصادف کردم و دور خودم میچرخیدم در حالی که پای من زیر پدال گیر کرده و شکسته بود از ماشین به بیرون پرت شدم و روی علف‌ها افتادم بلند شدم و ماشین رو خاموش کردم و مشغول جمعوری چیزهایی شدم که از ماشین به بیرون پرتاب شده بود کتاب مقدس و بعضی از کتابهام رو جمع کرده بودم عنوان یکی از کتابها این بود چرا من مسیحی هستم علیرغم تصادفی با اون شدت من صدمه چندانی ندیده بودم ماشین تماماً اوراق شده بود اولین کسی که سراغ من اومد یک کشاورز پیر بود. کشاورز پیر از زیر کلاه آفتابیش به من و کتاب مقدسم نگاه کرد و گفت: آقا من گمان می کنم شما خداوند رو خدمت می کنید و یا اینکه بهتر می بود خداوند رو خدمت میکردی. خود من هم دقیقاً چنین احساسی داشتم. وقتی که من با اون ماشین کوچک قدرتمند از اتوبان پرت شدم، از مرگ نمی ترسیدم اما در این فکر بودم الان نه میدونستم کارهایی که باید انجام بدم هنوز تمام نکردم. حتی نمیدونستم اون کارها چی هست از این رو نمیخواستم اون موقع بمیرم بهترین رو کرد به زندگی عیسی وقتی داستان زندگی او رو در اناجيل میخونید اینه که این سوال رو بپرسید کارهایی که پدر از او میخواست انجام بده چه کارهایی بود عیسی مردی بود با افکاری با شکوه عیسی میخواست که کارهایی که خدای پدر به او محول کرده بود انجام بده وقتی ایسا بر صلیب مرد مرگ او بزرگترین کار او بود بر اساس مقدار فضایی که به این کار ایسا در چهار انجیل اختصاص یافته صلیب مهمترین بخش از کارهای او بود وقتی ایسا در پایان رنجهاش بر روی صلیب گفت تمام شد پدر روحم رو به دستان تو میسپارم او مأموریت خودش را تمام کرد دقیقاً اون چیزی که بر روی صلیب تمام شد چی بود؟ این چیزیه که عهد قدیم و عهد جدید با هم مرتبط میشن. اگر عهد قدیم رو مطالعه کرده باشید، عهد جدید رو خیلی بیشتر و بهتر درک خواهید کرد. در عهد قدیم خدا می میگفت وقتی میگم که با شما آشتی خواهم کرد و اون دیوار جدایی بین من و مخلوقاتم رو برخواهم داشت، به من باور کنید. وقتی عهد قدیم رو بررسی می کردیم، گفتم که تمامی اون قربانی‌هایی که توسط لاویان در کتاب‌های عهد قدیم تقدیم میشد، نماد چیزی بود که به بنی اسرائیل فرمان داده شده بود برای بخشش گناهانشون حیوانات رو قربانی کنند. کاهنین به اونها توضیح می‌دادند که اون حیواناتی که قربانی می‌شدند فقط تصویر ساده‌ای از ای بود که روزی می‌آمد. بره خدا این مرگ او بود. این قربانی برری بود که باعث میشد خدا گناهان رو ببخشه تمامی حیواناتی که قربانی شدند تصویر نمادینی از قربانی و مرگ برری خدا بودند به این دلیل که میگیم در عهد قدیم هر بار که حیوانی قربانی میشد خدا مرتبا میگوف که وقتی میگم با شما گناهکاران آشتی خواهم کرد باور کنید. در عهد جدید خدا میگه وقتی میگم با شما گناهکاران آشتی کردم باور کنید. عہد جدید به ما میگه که وقتی عیسی آمد او بره خدا بود که قربانی اون حیوانات رو به کمال رسوند. به این دلیلی که به مرگ عیسی بر روی صلیب به عنوان یک کمال اشاره شده. میتونید به مرگ عیسی بر روی صلیب کار بازخرید کردن او بگید. وقتی کتاب روت رو بررسی میکردیم نمیدونم با ما بودید یا نه. یادتونه معنی بازخرید کردن چی بود؟ اون به معنی دوباره خریدن هست، به معنی برگرداندن هست. روت زن غیر یهودی بود که با مردی یهودی ازدواج کرد اونها فرزندی نداشتند و شوهرش مرد براساس اساس آین اونها ازدواج او با شوهر یهودیش روت رو به عنوان یکی از قوم برگزیده خدا به حساب می آورد اما به خاطر مرگ شوهرش و چون هیچ فرزندی نداشتند روت دیگه عضو خانواده خدا نبود خدا قانونی بحث کرد قانون خیشاوند ولی قوانین یهودی می گفت که زنانی مثل روت میتونند به نزد خویشاوندان شوهر مرحومشون برند و بگن من میخوام که تو ولی من باشی. میخوام که منو برای خانواده الهی بازخرید کنی. میخوام که منو به خانواده خدا برگردونی. اگر مرد میپذیرفت که ولی او باشه با پرداختن تمام بدهی های زن که در تومار کوچکی نوشته و مهر شده بود او را بازخرید میکرد. اونها قبل از اینکه، مرد قصد خودش رو برای بازخرید کردن زن اعلام کنه اجازه نمی‌دادند از میزان بدهی زن اطلاع پیدا کنند ولی باید ثابت می‌کرد که خیشاوند شوهر مرحوم او هست و باید قصد و صلاحیتش رو برای بازخرید کردن اون زن اعلام می‌کرد بعد از اون مهر اون تومار برداشته می‌شد و به او می‌گفتند که بازخرید کردن اون زن به چه قیمتی تمام خواهد شد ولی با پرداخت بدهی‌های زن او را بازخرید می‌کرد و با او ازدواج می‌کرد و زن دوباره وارد خانواده الهی می‌شد حالا ما گفتیم کلمه‌ای که نویسندگان کتاب مقدس در مورد کاری که عیسی کرد و اینکه او واقعا چه کسی بود همون کلمه ولی بود وقتی ایوب فهمید که به نجات دهنده احتیاج داره او به نجات دهنده کننده گفت ایوب گفت من بازخرید بازخریدکننده من روزی بر روی زمین خواهد آمد. بازخرید کننده چیه؟ بازخرید کننده یا مفهوم بازخرید قبل از آن که یک مفهوم الهیاتی باشه، یک مفهوم قانونی هست. در عهد جدید وقتی رسولانی مثل پتروس فهمیدند وقتی عیسی بر صلیب مرد چیکار کرد، اونها اون رو اینطور بیان کردند. ما با چیزهای فانی مانند نقره و طلا نجات پیدا نمی کنیم، بلکه به وسیله خون ارزشمند عیسی مسیح که مالند بره بی عیب که برای ما قربانی شد این بهای بازخرید شدن ما بود پس مرگ عیسی مسیح بر صلیب کار بازخرید کنندگی او بود خدمت بازخرید او عیسی به غیر از کار بازخرید کردن کارهای دیگری هم انجام داد باز هم بر مبنای حجمی که در اناجیل به این اختصاص یافته بازخرید کردن آشکارا به عنوان کار اصلی او مطرح شده اما این تمام کاری نبود که او در طی زندگیش بر روی زمین انجام داد. عیسی مسیح میتونست در بعد از ظهر روز جمعه صلیب به آسمان برده بشه چون کار بازخرید کردن او در این دنیا به پایان رسیده بود. چون در بعد از ظهر اون جمعه او این خدمتش رو به کمال رسوند. اما عیسی به مدت 33 سال بر روی زمین زندگی کرد. او چه کارهای دیگری انجام داد؟ خب اساسا او به ما نشون میداد که چطور زندگی کنیم. و این رو نمیتونست در جمعت و سلیب ما نشون بده. عیسی در انجیل یوحنا گفته من راه راستی و حیات هستم. هیچ کس نمیتواند جز به واسطه من نزد پدر آید. این چیزیه که عیسی در یوحنا باب چهارده های شش گفته. من راه رسیدن به خدا هستم. این اشاره به کار بازخرید او داره. هیچ راه دیگهی جز به وسیله بره خدا برای رسیدن به خدا وجود نداره. گفته کتاب مقدس. ایمان به مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب تنها راهی هست که ما میتونیم نجات پیدا کنیم. تمامی عهد جدید این رو تعیید و اثبات میکنه و در هیچ کس غیر از او نجات نیست. زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به کسی عطا نشده که با اون ما نجات پیدا کنیم. وقتی عیسی مسیح گفت من حقیقت هستم به خدمت تعلیم خودش اشاره می کرد. وقتی گفت من حیات هستم به خدمت معجزات خودش می کرد. حالا توجه کنید که عیسی نگفت من آمدم تا به شما راه رو نشون بدم و یا در مورد حیات و حقیقت با شما صحبت کنم. عیسی گفت من راه هستم، من حیات هستم، من حقیقت هستم. وقتی انجیل رو میخونید، معجزات عیسی رو ملاحظه کنید. شاید فکر کنید که بهترین عنوان برای این میتونه باشه. معجزات عیسی یا شاید شفاهای عیسی. حدود یک سوم محتویات این چهار انجیل مربوط به معجزات شفابخش عیسی هست عیسی افراد بسیاری را شفا داد. وقتی در مورد خدمت شفای عیسی می خونید، از خودتون بپرسید اهمیت خدمت شفای عیسی برای امروز من چیه؟ پویاترین حقیقت عهد جدید بعد از قیام عیسی میاد. وقتی به کتاب اعمال رسولان و رسالات در عهد جدید می رسیم، پویا حقیقتی که به نظر میرسه اینه. عیسی مسیح زنده هست و در روی زمین هست. عیسی مسیح مصلوب شد و دفن گردید اما از مردگان قیام کرد و او زنده است. او امروزه در مردمان زندگی میکنه. کنه این پویاترین حقیقت عهد جدید است. در کولوسیان 1.27 می گه مسیح در شما امید جلال شماست اگر همان مسیحی که دو هزار سال پیش در روی زمین زندگی می کرد در من و شما زندگی میکنه و حدود یک سوم خدمت او در روی زمین مربوط به شفا بود آیا فکر می کنید ایسا که امروزه در من و شما زندگی میکنه میتونه شفا بده؟ البته، او میتونه. به اعتقاد من مفهوم کلی خدمت شفای عیسی وقتی ما اناجیل رو بررسی میکنیم اینه. آیا اراده او همیشه اینه که شفا بده؟ واضحه که نه. من گمون نمی نمیکنم که اراده او همیشه این باشه که شفا بده. او پولس رسول رو شفا نداد. با وجودی که خود پولس رسول خدمت شفای بزرگی رو بر عهده داشت، پولس وقتی خدمت میکرد دید که مردم از مردگان بلند شدن با این حال خود پولس بیمار بود سه بار او از خدا خواست که بیماریش رو برداره و خدا گفت نه نه نه چون فیض من تو را کافی هست وقتی تو ضعیف هستی قدرت من بیش از همیشه بر تو قرار میگیره اگر من اجازه بدم تو قوی بشی تو به قوت خودت تکیه میکنی پس من میخوام رو در ضعف نگه دارم وقتی پولس این را شنید او فقط نگفت من میپذیرم. پولس میگه مرا گفت فیض من تو را کافی است زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد. پس به شادی بسیار از زعفهای خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از زعفها و رسوایی و احتیاجات و زحمات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. مسیح پولس را شفا نداد. افراد زیادی مثل خود من هستند که او شفا نمیده وقتی مردم دستشون رو, رو روی صفحه تلویزیون و یا رادیو میذارن و دعا میکنن شفا بگیرن گاهی بعضی از اونها شفا پیدا میکنن اما چند نفر از اونها اگر شما حقیقت عملی رو بدونید حقیقت اینه که احتمالا کمتر از دو درصد من نمیدونم دقیقا چند نفر میتونید بگید خب همه اونها میتونستن شفا بگیرن شاید میتونستان اما حقیقت اینه که آیا شفا یافتند من فکر نمی کنم شفا یافتند خدا همه رو شفا نمیده شاید همونطور که در کتاب ایوب دیدیم گاهی او با شفا ندادن به کسی جلال پیدا می کنه. با دادن فیض به اونها که بتونند با چیزی زندگی کنند که او مقرر کرده جلال پیدا می کنه. وقتی انجیل رو میخونید دنبال خدمات معجزه عیسی بگردید قطعا شکی در اون نیست که وقتی عیسی بر روی زمین بود معجزاتی انجام میداد و امروز هم میتونه معجزاتی انجام بده ببینید عیسی مسیح مردی بود که مأموریتی داشت مردی بود با افکار تابناک تنها فکر او این بود که کاری رو که پدر به او محول کرده به انجام برسونه اون کارها چی بودن وقتی انجیل رو میخونید دنبال جواب این سوال بگردید او کار بازخرید کردن رو داشت او کار احیا کردن مردم رو داشت او با معجزاتش مردم رو به لحاظ جسمی احساسی و روحانی شفا میداد او همینطور خدمت بزرگ تعلیم رو داشت. ما در جلسه بعدی به جزیات بیشتری از خدمات او نگاه خواهیم کرد. عیسی گفت من راه هستم. من حیات هستم. اما همینطور گفت من حقیقت هستم. در جلسه بعدی ما این سؤال رو خواهیم پرسید. وقتی او می گفت من حقیقت هستم منظورش چی بود؟ آیا عیسی رو میشناسید؟ شاید چیزهایی در مورد او بدونید. اما آیا واقعا او رو میشناسید؟ از شما دعوت میکنم کنم که بیایید و او را بشناسید. دانشجوی منظمی در این دوره از بررسی کتاب مقدس باشید و امروز خودتون رو وقف کنید که راه حیات و راستی رو بشناسید. عزیزان متشکرم که دانشجوی متعهدی هستید و با ما همراه بودید و از دیگران دعوت میکنید کنید که با ما در بررسی زندگی، مجزات و تعالیم مسیح همراه باشند. اگر تا کنون اون رو به عنوان ناجی و خداونده خود نپذیرفتید امروز این کار رو بکنید و از اون پیروی کنید. این میتونه بهترین تصمیمی باشه که شما در زندگیتون میگیرین. اگر تصمیم گرفتید که از مسیح پیروی کنید، تشویقتون می‌کنیم که بشارت اون رو به دیگران هم بدین. تا برنامه بعدی امیدواریم که روح اون به شما قدرت بده و شما را تشویق کنه که در ایمان جسارت داشته باشید. امیدواریم که شادی او و برکات پیروی او رو در زندگیتون تجربه کنید. آمین.